که آیاتو الكتاب الحکیم هدو و للمحسنین به نام الله که بخشاگنده و با رحمت است <متصفيق> <متصفيق> الیف <لام مي> اینها آیات کتاب حکیم است که برای نیکوکاران هدایت و رحمت است. همانان که نماز به پامی دارند و زکات پرداخت می و به وجود آخرت یقین دارند. آنها در جریان هدایت الهیشان قرار دارند و بیشک همشان رستگارند برخی مردم خریدار سخنان بی ارزش و بی اساسند تا به واسطه آن مردم را از روی نادانی از راه نجات بخش الهی گمراه کنند و آیات الهی را به استهزاء بگیرند بدانید برای همهشان عذابی خار کننده است هنگامی که آیات ما بر چنین شخصی خوانده شود متکبرانه روی برمیگرداند چنانکه که گویی اصلا آن را نشنیده است و گوشهایش سنگین است چون این کسی را به عذابی دردناک بشارده برای کسانی که به حقایق ایمان آورده و عمل کردی نیک و شایسته دارن بهشتهای پرنعمتی ممیز که در آن جاودان خواهند بود بدانید که وعده الهی حق است و او قدرتمند و حکیم است خدایی که آسمان را همانطور که میبینید بی هیچ ستونی برا کرد و در روی زمین خوهای پدید آورد تا باعث لرزش شما نشود توازن زمین برقرار کرده و هر گونه را در زمین پراکند و از آسمان آبی فرستادیم و به وسیله آن هر گونه گیاه مفیدی را رویاندیم این آفرینش خداست پس به من نشان دهید آنها که غیر خدا هستند چه چیز آفریدند حقیقتا ظالمان در یک گمراهی واقعی به سر میبرند ما به لغمان حکمت عطا کردیم و گفتیم شکر خدا را به آور زیرا هر کس شوق گذاری کند به نفع خود عمل کرده است و کسی که کفران و ناسپاسی کند بداند که خدا بینیاز و در خور ستایش است و لغمان در حالی که پسرش را پند می داد گفت ای پسرم برای خداوند شریک قائل نشو زیرا شرک ظلم بزرگی است و به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردی مادری که او را باردار شده و هر روز ضعیف و ضعیفتر گشته همون که پس از دو سال از شیرش باز گرفته است آری به او سفارش کردیم که سبوس گذار من و پدر و مادرش باشد بدانید بازگشت همه به سوگ من است و اگر آن پدر و مادر تلاش کنند تا چیزی را که بدان آگاه نیستی شریک من قرار دهی اطاعتشان مکن اما با آنها به نهو شایست و نیک معاشرت کن و همواره از راه کسانی که رو سوی من دارن پیرمین ما بازگشت همه شما به سوگ من است و سرانجام از عملکردتان آگاهتان خواهم کرد ای پسرم، اگر عملی به اندازه یک دانه خردل درون اون صخری یا در آسمان ها و زمین باشد خداوند آن را به حساب می آورد بدان که خداوند لطیف و آگاه است یا بنی أقیم الصلاة واأمر بالمعروف وانهی عن المنكر واصبر علی ما أصابك ان ذلک من عزم الامور ای پسرم نماز را به پای و همواره به نیچی امر کن و از بدی نهی ما. و در برابر مصیبتها ها صبر و استقامت داشته باش زیرا این کارها مهم و اساسی است هیچگاه به تکبر از مردم روی مگردان و در روی زمین مغرورانه راه مرو زیرا خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد در مشی خود متعادل باش صدایت را بلند مکن که ناشناخت ترین صداها صدای خران است آیا نمی بینید که خداوند آنچرا در آسمان ها و آنچرا در زمین است در اختیار شما گذاشته و نعمتهایش را چه آشکار و چه پنهان به تمامی عطایتان کرده است اما برخی مردم بدون علم و آگاهی و بی هیچ هدایت و کتاب روشنی در مورد خداوند مجادله می نمایند. و اگر به آنها گفته شود از آن که خداوند نازل کرده پیروی کنید، گویان نه، ما از آن که نزد پدرانمان یافته این پیروی می کنید. حتی اگر شیطان آنها را به عذاب آتش دعوت کند، کسی که تمام وجود خود را تسلیم خداوند کند در حالی که نیکوکار باشد حقیقتا به دستگیرهای محکن چنگ زده است بدانید که عاقبت همه کارها به خدا ختم می شود هر کس به حقایق کافر شد کفرش باعث غمگینی تو نشود بازگشت همشان به سوی ماست و سرانجام از عملکردشان آگاهشان میسازیم، بدان که خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاه است اکنون، اندکی آنها را از نعمتهای دنیا بهره مند می کنی. سپس آنها را به تحمل عذاب سختی وادار می سازی از آنها سوال کنی چه کسی آسمان و زمین را خلق کرده است بیشک گویند الله بگو ستایش مخصوص خداوند است هرچند اکثرشان درک نمی کنند آنچه در آسمان و زمین است از آن خداست و خداوند بی و در خوره ستایش است. چونم که تمام درختان زمین قلم شوند و دریا مرکب گردند و هفت دریای دیگر از پیش آیند باز کلمات الهی پایان نمی گیرد بدان که خداوند قدرتمند و حکیم است آفرینش همه شما و زنده کردن دوباره همه شما همانند زنده کردن یک نفس است. به راستی خداوند شنوا و بیناست آیا نمی بینی که خداوند شب و روز را از دل یک دیگر در میآورد و خورشید و ماه را مسخر ساخته و هر کدام تا سرامد معینی به حرکت خود ادامه می دهند خداوند نسبت به عمل کردتان آگاه است اینها دلیل آن است که خداوند حق است و آنچه به جای او می خوانند باطل براستی خداوند بلند مرتبه و بزرگ است آیا؟ نمی بینی که کشتی به واسطه نعمت خدا در دریا حرکت می کند تا پاره از نشانهای خود را به شما نشان دهد. در همه اینها برای هر بردبار سپاسگذاری نشانهایی نافده است هنگامی که از عظیم چون ابرها آنها را فراگیرد خداوند را با اخلاص تمام می و هنگامی که آنها را به سلامت به خشکی برسانیم و نجات دهیم فقط برخی به عهد خود وفادار می مانند. بدانید که آیات ما را فقط انسانهای پیمان شکم و ناسپاس انکار می کنند. ای مردم حرمت عوامر پروردگارتان را نگاه دارید و بترسید از روزی که هیچ پدری به جای فرزند جزا نبیند و هیچ فرزندی نیز به جای پدر مجازات نشود. بعد الهی حق است، پس مراقب باشید. زندگی دنیا شما را فریب ندهد و شیطان شما را در برابر خدا مغرور نسازد. آگاهی از زمان وقوع قیامت نزد خداست باران را او نازل می کند. او از درون رحم ها آگاهی دارد. هیچ کس نمی‌داند که فردا چه به دست می‌آورد و هیچ کس نمی‌داند که در کدام این سرزمین میمیرد. فقط خداوند آگاه و باخبر است این الله عنده علم الساعه و ينزل غيث ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم راست گفت خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی اللہ علیه و آله و سلم